اصل 3 خانه تیمی که ما چند روزی وقت داریم تا در محل خودمان را به عنوان زن و شوهری جوان جا بیندازیم و وسایل خانه تیمی را تکمیل کنیم بعد رفیق سومی به ما می پیوست و برنامه های بعدی تیم شروع می شد هرچه سریعتر باید برای تهیه وسایل خانه دست به کار می شدیم و آنها را طوری می چیدیم که خانه به نظر عادی بیاید می دانستم که رفقا برای اسباب و وسایل تیم کمترین هزینه را میپردازند چرا که در هر لحظه ممکن بود به دلیل درگیری مرد یا دستگیر شدن رفیقی خانه لو رفته و مجبور شوند آن را با تمام وسایلش رها کرده و بروند فقط ضروری ترین چیزها را میخریدند خانه ما در محله شکر شکن قرار داشت که ساکنانش بیشتر بازاری های متوسط بودند نیازی به میز و صندلی و مبل نبود. میشد اتاقی را با چند پتو که با ملافه های سفید پوشیده شده بودند، یکی دو متکای بزرگ به عنوان پشتی، آینه و شمدانی توی تاقچه تزیین کرد. دو اتاق تو در توی دم در را به کارهای تیم اختصاص دادیم. این اتاق پنجره بزرگی به حیات داشت که نیما آن را با حسیری پوشانده بود تا از حیات داخل اتاق دیده نشود. دو پهن داشت که روی آنها کتاب، کاغذ و لوازم و تحریر گذاشته بودیم نیما تاکید داشت بهتر اشکافی بگیریم و کتابها و اسلحه رو اونجا بذاریم و درشم ببندیم اینطوری مطمئن تره اسلحه و دیگر وسایل ممنونیز در همین اتاق جای می گرفتند. در گوشه دیگر اتاق لحاف ها و پتوها روی هم چیده شده بودند مطالعه خوابیدن، قضا خوردن جلسه و تمام کارهای تیمی در همین اتاق انجام میشد. در اتاق همیشه به روی همسایهها بسته میماند. برای خرید به سمساری که نیما می شناخت رفتیم و وسایل دست دوم تهیه کردیم آبی با شمایل حضرت علی دیدم و آن را برداشتم نیما پرسان نگاهم کرد گفتم فکر کنم تو هر خونه این محله همچین عکسی باشه اغلب زنهای اصفهان چادر گلدار سر می چادرهایی روشن با گلهایی درشت چادر گلدار را در تهران در خانه خانم جان دیده بودم خانم جان چادر مشکی مهمان را می گرفت و چادر گلدار خودش را به آنها میداد من با چادر مشکم که از خانه تیمی پوران آورده بودم در اصفهان توی چشم می خوردم از همین رو برای خرید چادر گلدار به بازار رفتیم در راستای چادر فروش های بازار خود را رو در رو با دریایی از پارچه های رنگی دیدم هیچ وقت این همه پارچه چادری رنگ و رنگ ندیده بودم فروشنده که چهره حیران و دهان باز مرا دید چادری را یکی یکی بیرون کشید و به نمایش گذاشت پارچه چادری با زمینه سفید و گلهایی به رنگ صورتی و نفش سبز کمرنگ از جنس اطلسی به رنگ آبی آسمانی حریر به رنگ نارنجی روشن ناتوان از انتخاب محو تماشای آنها شده بودم حسی از جنس شرم مانع از آن تا خاست دلم را که انتخاب شادترین رنگ بود بیان کنم نیما انگار که نگاه هم را دنبال کرده باشد یکی از زیباترین ها را انتخاب کرد چادری با زمینه سفید و گلهای بزرگ صورتی کمرنگ روز بعد که با چادر سفیدم از خانه بیرون آمدیم و نیما با همسایه ها با سر سلام و احوال پرسی کرد از نگاه آنان خاطر جمع شدم که در اولین برخورد به عنوان زن این خانه پذیرفته شدم همه چیز آماده بود تا به دیدن زن صاحب خانه برویم خانه چند کوچه پایین بود در خانه را که به روی گشود با زنی کوتاه قد. ریزه و استخانی که چند تا از دندانهای جلویش ریخته بود روبرو شدم انتظار نداشتم تا مرا آنچنان گرم بغل گیرد ماشال لاچ خانومی با مهربانی به اتاق مهمان راهنماییمان کرد در حالی که چای را جلوی ما بر زمین میگذاشت از خوبی و سربزیری نیما تعریف کرد جا پسری خودم است تا گفتم لوله آشپزخونه گرفته تندی اومده لوره را واع کرد من که پسر ندارم خدا خداش اون بده. چه آدمی خوبیه؟ همش به فکری شما بود با اینکه همش تنها بود یه بار نیمت با ما شام بخوره به خدا از بس تعارفش کردیم خسته شدی. شما مثل مادرم اگر بازم کاری هست محو حرف زدن نیما شده بودم. خوب میدانست چه بگوید تا خود را در دل صاحبخانه جا کند صاحبخانه با نگاهی شیفته از او تشکر میکرد انگار واقعا آرزود که رفیق پسر او باشد رو کرد به من و همانطور که ظرف سوهان را جلویم می گرفت گفت ایشالا به پای هم پیر بشید آ خدای پسر سالم نصیبتون کند راستی حال مادرتون چی طورست؟ اسفان اومدن ما رو یادتون نره دا؟ حتمی می خدمتشون برسیم از فرصت استفاده کردم تا آمدن رفیق سوم را به عنوان برادرم مطرح کنم مادرم بهترن هنوز نمیتونه سفر کنه میخواد برادرم راهی کنه بیاد یه سر پیش ما وقتی اومدن حتما خبرتون میکنه نیما پشت حرف مرا گرفت و گفت ما که تو اسوان کسی رو نداریم خوشحال میشیم بیاید پیش ما فکر کردم اگر صاحبخانه این دعوت رو جدی بگیرد کارمان در میآید باید کلی بشقاب و قابلمه بخریم و کسی را بیاوریم تا برای ما غذا درست کند دستپخت مرا که نمیشه جلوی صاحبخانه گذاشت پیش از اینکه که سراغ همسایه روبرویی بروم خودش به دیدنم آمد غروب بود جلوی خانه را از جوی توی کوچه آب پاشیده و جارو میکردم که با ظرفی قضا در دست جلویم سبز شد زنی بود با قدی بلند چهل ساله با چشمانی تیز کنچکاو و با لحجه قلیز اسفحانی خوشومدین، میدین؟ صفا آوردین؟ حالدون چطوره؟ چقدر این مردا منتظر گذاشتید؟ آدم که شوهر جوونش اینقدر تنها نمیذاره دیدم تازه از را رسیدین دو هزار تا کار دارین برای بچه پخته پخت عدس درست کرده بودم گفتم یختشم برا شما بیارم قابل نداره ظرف را دستم داد نمیدانستم که این کار ابتکار خودش بود یا رسم اسوانی ها فوری داستان مریضی مادرم را که از بر بودم برایش تعریف کردم بعد از شنیدن آن نگاهی به سراپایم انداخت و گفت وای خدا مرگم بده تفلکی معصوم برا همینست که اینقدر پای چشات گود افتاده است آمیسه دوتا چوغ اینقدر لاغر شدی حالا قصه نخ و آدم آدمو چاق می کند. تا چند وقتی که آب می زیر پوستد و دواره سری حال میای لهجه لحجه شیفتم کرده بود پس از خدافزی و تشکر با احساس رضایت در را پشت سرم بستم دیدم نیما پشت دری ایستاده و میخندد به چی میخندی بابا ای ولا رفیق اول که دیدمت گفتم این رفیق خیلی جوونه چطور میتونه نقش زن خونه رو واسه این اسوانیای تیز و بازی کنه؟ خواستم کمی دستش بیاندازم گفتم رفیق جوان کدومه؟ من سی سالمه گفتم و بدون اینکه منتظر واکنش او شوم از راه رو به اتاق رفتم با کمی تأخیر دنبالم آمد و گفت خب رفی قیافت جوون نشون میده. جا خوردم. به سمتش برگشتم. خنده شیطنه کرد. تجربه فعالیت کار تاتری در خانه تیمی به کمکم میامد. کار تاعت را از مدرسه آغاز کردم. پایان سال تحصیلی کلاس چهارم دبستان بودم که معلم خیاتیمان پرسید چه کسی میخواد تو جشن آخر سال فعال باشه به بخونه، تاتر بازی کنه؟ اولین نفری بودم که دستم را بالا بردم آن سال نقش زمستان را در تاتر چار فصل بازی کردم ترانه هم از گوگوش خواندم. آنقدر از این کار خوشم آمد که بازیگری را تا دانشگاه ادامه دادم در دانشکده به گروهی هرفهی پیوستم بعد از ارتباط با سازمان بازیگری را کنار گذاشتم روزهایی که برای تکمیل وسایل خانه با نیما میرفتیم، از کوچه هایی رد می شدیم که جویهای پر آبی داشتند از همان روز اول به این جویها علاقمند شده بودم برخی کوچه های تهران هم جوی آب داشتند اما یا خشک بودند یا آبی کسیف از آنها میگذشت. در اصفهان آب جویها تمیز بود و کنارشان سبزه و گلهای ریزی روییده بود عصر مردم با همان آب جلوی خانه ها را آب پاشی و جارو می کردند و کوچه ها تمیز می شدند. خود اسوانی ها به این جوی ها مادی می گویند. از نیما میخواستم خواستم که راهی از کنار مادی ها پیدا کند. او هم هر بار در خریدهای من مسیری را انتخاب می کرد که از کنار یکی از آنها می هرکدام هر کدام از ما مادی محبوبی داشتیم که به نام خودمان نامگذاری کرده بودیم به مادی ها بسته به زیباییشان نمره می دادیم. این مادی نمره 15 میگیره این این نمره دهم زیادیشه من سخت گیر بودم و نیما دست و دلباز در انتظار رفیق سوم بودیم تا تیم تکمیل شود نیما روزها در خانه می ماند و من به همسایه ها وانمود می که سر کار رفته است برای خرید مواد غذایی بیرون میرفتم. گپی با همسایه، سبزی فروش، قصاب و نانوا می زدم روزی روی پشت بام لباس پهن می که برای اولین بار همسایه دست راستی را دیدم او هم مشغول پهن کردن لباس بود از فرصت استفاده کرده و سر صحبت را باز کردم میان حرفم دوید و گفت از لباساتون معلومه که بچه و ریخت و پاش نداریم. شما مثل مادر شوهرم لباساتو از شوهر جدا میشوری، اون میگه لباس مردان نجسه. یه نگاهی به بند لباس انداختم، دیدم لباسهایی که روی بند پهن میکنم فقط مال خودم است. توی دلم گفتم چه چیزهایی نظر مردم را گیرد از آن پس تو نخ بند های شسته شده همسایه ها رفتم. از لباسهای آویزان هر پشت بامی میشد فهمید مثلا چند زن، مرد و بچه در آن خانه زندگی می کنند. چند بار در هفته لباس ملافه و حوله می‌شویند، چه لباسهایی می و من هم یاد گرفتم که هفته یک بار علاوه بر لباسهای خودم ملافه و حولهی را هم روی بند پهن کنم وقتی هم که لباس کافی نداشتم از ساک رفیق دختر چیزهایی را خیس کرده همراه با بقیه روی پشت بام میانداختم. نیما هم پیراهنش را که میشست میداد تا در کنار خرطوپرت های دیگر روی بند پهن کنم. شب جمعه تصمیم گرفتیم برای همسایه ها حلوا درست کنیم. درست کردن حلوا را هم مثل غذاهای دیگر بلد نبودم. هر روزی که نوبت پختن غذا به من می رسید، نیما با شیطنت میگفت نون و پنیر بیشتر بگیر لازم میشه. از دوره دبیرستان علاقهی به یاد گرفتن و مشارکت در کارهای خانه نداشتم. بعد هم که با سیاست آشنا شدم، کارهای خانه را کاری زنانه و کم ارزش می‌دانستم. فکر می کردم چریک نباید خود را به کارهای پیش پا افتادهی چون آشپزی، بافتنی، خیاتی و خانداری مشغول کند. حالا می که در خانه تیمی هم باید قضا پخ. سعی می کردم از رفقا یاد بگیرم اما آشپزی همچنان برایم کاری بیارزش بود روز اولی که وارد تیم شدم رفقا گفتند امروز تو غذا درست کن عدس پلو بلدی؟ معلومه فکر کردم عدس پلو که کاری ندارد از اسمش پیداست بارها تفق شدهش را در خانه سر سفره دیده بودم آب، عدس، نمک و روغن را در قابلمه ریخته و گذاشتم روی چراغ. بعد از نیم ساعت دیدم که برنج پخته اما عدسها نپختند. این بود که کمی آب رویش ریختم و گذاشتم بیشتر بپزند. باز هم آب تمام شد. گیج مانده بودم که چرا این عدسها ها نمی پزند. بعد از چند بار آب ریختند برنج آنچنان شفته شد که از قاشق نمیافتاد افتاد. عدس ها اما مثل سنگ آن وسط سفت و سخت باقی ماندن. عدس پلوی دست پختم آن روز صاف رفت توی سطل آشغال و ناهار نان و پنیر خوردیم. در نگاه رفقا میدیدم که میگویند این دختره رو که بلد نیستی عدس پلو بپزه کی عضوگیری کرده؟ اما حالا چاره ای نداشتیم. در عوض آن همه محبت همسایه ها که غذاهای جور واجور برای ما میآوردند باید چیزی برایشان می بردیم. نیما پیشنهاد بردن آش را داد با تعجب نگاهش کردم آش که سختتر از حلواز نگفتم خودمون درست کنیم میتونیم بخریم از کجا میخوام بفهم خودمون درست نکردیم پیشنهاد خوبی بود آشی را که مخفیانه از بازار خریده بودیم در کاسه های چینی ریختم و به عنوان آش نظری بین همسایه ها پخش کردم خوشحال بودم که کار خوب پیش رفته است اقدس خانوم همسایه کنجکاوه روبرویی آش را گرفت و با محبت گفت به به چه بوی خوبی میده توش چی چیز زدی منتظر چنین سوالی نبودم ماتم برده بود که چه بگویم ذهنم به صورت دنبال نام ادویه ها گشت که خودش پیش دستی کرد و گفت باشد بعداً ازتون دستورشو میگیرم نفس راحتی کشیدم خانه تکمیل شده بودم ما رفیق سوم هنوز نیامده بود در برنامه روزانه فقط ورزش و خرید بود. باقی روز به مطالعه گذشت. یکی دو ساعت دو نفری و بقیه روز فردی. حوصله خواندن کتابهایی را که در برنامه مطالعه تیمها بود نداشتم. این کتاب‌ها یا برای اثبات درستی سوسیالیسم نوشته شده بودند یا برای توضیح ضرورت مبارزه مسلحانه. من هر دو را قبول داشتم. نمی‌فهمیدم چرا باید ساعت‌ها مانیفست حزب کمونیست یا جزوه مسعود احمدزاده را خواند به تدریج متوجه شدم که نیما هم مثل من این کتاب را با بی میلی میخواند حتی موقع خواندن چرت می اما وقتی صحبت به ادبیات می رسید چرتش پاره می شد چشمانش برق می کتاب را می و میپرسید از حافظ خوشت میاد و قبل از اینکه جوابی بدهم شروع به خواندن میکرد در این حضرت چو مشتاقا نیازارند نازارند بدین درگاه حافظ را چو میخوانند میرانند از شعر سر در نمیآوردم اما محو توضیح های نیما میشدم او از علاقه من به وجد نیامد شعر دیگری میخواند اینو شنیدی به کجا چون این شتابان گون از نسیم پرسید دل من گرفته اینجا از این که نیما این همه شعر را از حفظ بود تعجب می کردم نیما مرا به یاد پدر بزرگم که در مشاعره از تمامی اعضای فامیل می برد نیما بعد از خواندن هر شعری نام شاعر را هم می گفت گاهی هم شعرهایی می بی بیان که نام شاعر را بگوید بی پرسیدم این شعر مال کی بود؟ مال یک شاعر جوان نکنه مال خودته لبخندی میزد و جوابی نمیدا تو از شعر چی میفهمی؟ یعنی چه چیزی در شعر تو رو انقدر شیفته میکنه؟ ببین من از حرف زیادی خوشم نمیاد توی شعر با کمترین لغت میتونی بیشترین حرف رو بزنی جالب نیست؟ هیچ وقت از این زاویه به شعر نگاه نکرده بودم دیدم خیلی هنر میخواهد که آدم با کمترین کلمه بیشترین حرف را بزند برخی افراد دو ساعت حرف میزنند و مخاطب آنها نمیفهمد که درباره چه سخن میگویند نیما ادامه داد ببین در این چند کلمه چقدر حرف زده شده با صدای بی صدا مثل یه کوه بلند مثل یه آه کوتاه یه مرد بود یه مرد یا پرنده مردنی است پرواز را به خاطر بسپار. فروغ را می شناختم در مدرسه با برخی از شعرهایش آشنا شده بودم، هم کلاسی هایم در دبیرستان شعرهای او را می خواندند و عاشق شدند پرسیدم: از فروغ خوشت میاد مثل اینکه بر نکته مورد علاقش انگشت گذاشته باشم با سر تیید کرد تو چی؟ شعراشو تو مجله فردوسی دیده بودم اما تو زمین شعر من بی سواده بی سوادم پس باید سعی کنم تا سوادت بیشتر بشه سرانجام روزی نیما خبر آمدن رفیق سوم را داد قرار بود همساگه ها از حضور او در خانه مطلع نشوند و اگر کسی او را احیانا می دید بگوییم برادر من است فکر پیوستن نفر سوم، و تکمیل تیم حس خوشبختی مرا در این خانه تکمیل می کرد. خانه را طوری آماده کرده بودیم که می توانستیم با خیال راحت تیمی چریکی را در آن پایه گذاری کنیم و به کارهای انتشاراتی، نظامی و عملیاتی به پردازی. به نظرم میآمد سالهاست در اصفهان و در این خانه زندگی می کنم و تمام دلتنگی دوری از خانواده و ناملایمات ماه های اول مخفی شدن به گذشته های دور تعلق دارند فکر می کردم چقدر لهجه اسفحانی شیرین است چقدر ما، ما گفتنهای نیما با مزه است چقدر مادیهای اسفحان خوشبوست چقدر شعرهای حافظ زیباست ذهنم درگیری با پلیس و ضرب خوردن را محو کرده بود دوست نداشتم به غرق خون شدن چادر گلدارم فکر کنم